هفتمین عادت زده تنبلی کارهای همانند را در یک گروه قرار دهید. بحانه ای که از میاد می رود، فراموش می کنم انجامش دهم. ده همه ما کارهایی داریم که انجامشان تنها چند دقیقه طول می کشد اما معمولا در طول یک روز پرمشغله از غلم می افتند. اینها به مانند پروژه ها نیازمند پروسه نیستند. تنها مواردی از کار یک مرحله ای هستند که مهمند و باید به طور مرتب هم انجام شوند. فراموش کردن آنها آسان است، مگر اینکه عادت خاص انجام دادن هر روزه آنها را در خودتان پرورش داده باشید. یک راه حل ساده برای از یاد نبردن انجام این کارهای کوچک آن است که آنهایی که به یکدیگر شبیه هستند را در یک گروه قرار دهید. دستبندی در یک گروه نیز به مانند نوشتن فهرست بازبینی است که در فصل قبل بدان پرداختیم. تفاوت آن است که در اینجا از نشانه های زمانی محیطی به عنوان یادآور انجام دادن آنها استفاده می‌کنی. برای مثال من یک سری از کارهای مهم روتین صوبگاهیم را در یک گروه دستبندی کردم. در حقیقت این مجموعه به صورت یک پروسه گام به گام از لحظه بیدار شدنم تا نشستن پشت کامپیوتر برای آغاز کارم را در بر می گیرد 1. میان ششونیم تا هفت و نیم صبح از خواب بیدار می شوم دو. به دستشوی می روم 3. صورتم را میشویم و خودم را وزن می کنم 4. به اتاق خواب برمیگردم و تختم را مرتب می کنم 5. لباس خوابم را در میآورم و لباس روزم را می پوشم. شش به آشپزخانه میروم و یک لیوان آب به همراه لیموک تازه مینوشم. 7. ام را که شامل یک لیوان شیر، کمی میوه و دو قرص ویتامین اس را آماده میکنم. 8. به اتاق کارم میروم و کامپیوترم را روشن میکنم. نه، در زمانی که سیستم بالا میآید، اهدافم را مرور میکنم و صبحانه میخورم. 10. قرص های ویتامین را می خورم. یازده کار شب ام را مرور می کنم. دوازده روزم را با دو ساعت نوشتن آغاز می کنم. البته اعتراف می کنم که تبدیل یک فعالیت روتین به یک فهرست بازبینی کمی واسفاسگونه است. اما با این کار به خاطر سپردن کارهایی که طی یک پروسه در یک گروه دست بندی شده اند علاوه بر آن دنبال کردن این پروسه باعث می شود موفقیت های کوچکی را به دست آورم که به من برای زمانی که می خواهم سرانجام کار نوشتنم را آغاز کنم انرژی می دهند. کار دیگر این آده ترکیب آن با یک استراتژی جمعوری زمان به مانند تکنیک پومودو است. بعدا در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد. همه ما کارهایی داریم که به هم دیگر شبیهند و به همین دلیل هم هست که با دستبندی آنها در یک پروسه میتوان در زمان هم سرف جویی کرد. به عنوان مثال من برای خودم یک پروسه ارتباطی ساختم که شامل تمام فعالیت های ارتباطی من با دیگران است و هر روز آن را بدین شرح دنبال میکنم. 1. به سراغ تمام ایمیل هایم میروم و تمام پیام هایم را خوانم. وقتی که این کارم تمام شد، صندوقهای دریافت پیامم همگی خالی میشوند. دو، تمام قرارها و کارهایی که به سبب پیامهایی که در ایمیلم خواندم ایجاد شدند را در یک جدول برنامه ریزی قرار می دهم. سه، به نظرات کاربران دو وبلاگ شخصی هم پاسخ می دهم. چهار، به سراغ شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک و توییتر می روم. و به تمام پیام های مستقیم پاسخ می دهم و مطالب جدید در صفحه هم می 5. به پروژه‌های غیر رسیدگی می کنم. استفاده از این شیوه برای مدیریت کارهای کوچک اثرات مثبت فراوانی دارد که در اینجا به چند تا از آنها اشاره می شود. نخواستین که شما می به تمام مسئولیت ها و وقول وقرار های روزانهتان رسیدگی کنید. دومین سود این شیوه همانا را صرفه در زمان است و بدین وسیله می توانید زمان بیشتری برای فعالیت های 80 درصدتان کنار بگذارید. اجرای این عادت دوباره تاکید می کنیم بهترین راه برای اجرای این عادت آن است که و کوچک اما مهم روزانهتان را به ترتیبی که گفته می شود به پروسه های عملیاتی تبدیل کنید. 1. کارهای کوچکی که نتایج یکسانی نیز دارند را شناسایی کنید. 2. با نظمی منطقی آنها را در یک گروه قرار دهید. 3. یک پروسه گام به گام بنویسید و آن را به دفتر یادداشت پروژه اضافه کنید. 4. هر روز مقداری زمان را برای اجرای این عادت کنار بگذارید. مدیریت کارهای کوچک با دستبندی آنها مانع از انحراف از موضوع می شود. با آغاز هر پروسه دیگر جایی برای به تعویق انداختن کارها باقی نمیماند و شما کار بدیتان را انتخاب نمی کنید بلکه صرفا آنچه در فهرست تان نوشته اید را دنبال می کنید.